اعراب دادند در حالی که نصب دهنده هستند قبلا مفعول عربون قبل را اعراب دادند در حالی که نصب دهنده هستند قبل را مفعول عربون و ما من بعدی، و ما اتفاست به جای قبلند و آنچه که قد زکر من بعده منبعد متعلق است به قبل کرد. و کَرَد. قبل و زمینش فعل، و عاله. و آنچه که ذکر شده است منبعد قبل. قبل از قبل و کاری نداریم. ما بعدش رو قبل و ما بعدش. میگه قبل و ما بعدش اونها چیزهایی هستند که بهشون اعراب نسبی هم بده. دادن یعنی مثلا فساغلیش شرابو و کنتو قبلا این یعنی قبلا الان منصوب است و ضرب است یا یعنی مثلا کلمه حسب که من مثال زدم براتون مثل رعیت و سیدن حسبن که گفتیم یعنی چی؟ کافیان منصوب شد الان حالیته میگه اعراب دادند اعراب نسبی مال اون صورت نسیگن منسیگهاش قبل و ما بعدش رو که ازا ما نکره ازا ازای شرطیه اضافه میشه به فعل شرط منصوب است که جزایش ما بعد از ازا زایده است من کجور بیان ازا ما ما زایده مفید تحکید نکره زمیر قبل زمیر چی؟ قبل قبلا نایبه فایدش چون قبلا از نظر لفظی رتبهی جلوتر است از ازامانو کلن چون قبلا مفهول که عرب روز زمانی که نکره بشه قبل نکره بشه یعنی چی؟ یعنی از اضافه درد بشه هم لفظا هم در این صورت منصوب میشه و اسمیست نکره قبل و ما بعدش و عربون اصبا ازامان و نکرا و مامین بعده هی خرد اون مانوکرا نکرا ازامان و نکرا شرط شد جزای شرط به غلینه عربون که چیه دلیل جزاز پرزم شده و عربو نسبن اعراب دادن اعراب نسبی یعنی مرگو که قطع از اضافه میکنن کنن منسی یا میشه شه فسا و شراب و کنت و قبلن اکاد و عوض و برماه فراد اعراب نسبی دادن و جرن خیلی اعراب جری دادن مثل الله رو من قبلن و من بعدن قهد کردن درسته؟ یا مکردن مفردن مخبرن مدبرن من که جنبود سخن حد تا بای سایلومن علم قهد شد و مجرور شد کما تقدم مثالهاش گذشت منم بردون ولفن و همچنینه ممکنه که چی؟ قهد بشه و بشه چی؟ مرخوب نیست کلمه قیر یادتونه؟ کلمه غیر کلمه چی؟ غیر این کلمه غیر موقعی که در یکی از دو برش میشد اسم چی؟ لعیسن خبرش مقروزنه؟ مقدر که زن با تنویم باش میدادیم که میگه خیلی همچیه؟ قلیله و ان نظم محامن تنویمه؟ قلیلان؟ که لعیس غیرون قبض تو عشرتن قبض تو عشرتن لعیس غیرون یعنی لعیس غیرون مقبوزن که غیرون بشه اسمی لعیسه و فرد شده باشه از چی؟ اضافه و رقم اضافه ما نکره زمانی که چی شده باشه نکره بشن اینها این قطع حنل اضافته یعنی از اضافه قد بشن یا کلمه حسب مثلا قطع بشه مثل فرست و هشتفن بود قط بشه حالا حسبو مبنی و زن مشبورد یعنی فحسبی زاله قد بشه بشه فحسبون این قطع حنل اضافه بشه. لفظن و نیتن لفظن و نیتن چی بشه قطع از اضافه بشه قبلا و ما من بعدهی قبل و آنچه که بعد از قبله میگه و قبله آنچه که بگو قبل از قبل قبل از قبل چه بود؟ کلمه قیل ها و از منبنا هن ایران این عدم تمام و قبله قبل زکران میگه و شمل زالکه عدو گوگه این عبارت مسلمه که استثنان ندارد به طور مطلق گفته و عربون اصلا شامل لفظ علوه هم هست چون لفظ علوه هم بعد از چیز شده بعد از قبل یعنی لفظ علوه هم میتونه چی بیاد بگید منصوب بیاد و قطع بشه هست اضافه در صورت که من از ابنه نرو کردم که کلمه ی الو دو تا خصوصیت داره یکی که مضافره نهی همیشه محضوبه و یکی اینکه که همیشه مجروره به میهنه پس باید این دیگه نصباً معنا نه میگه قول مصنف شامل الو هم هست و به صد سر راحت و بعضی ها حتی تسریف کردن به چیه به این مطلب که الو میتونه منصوب هم بگیر بیاد مثل قبله و به هی سر از اون لیکن بگیم مگه چطور؟ میگه ولی قال ابن حشامه قایی ابن شام در شهر عوض حول که خودش اینطور گفته و ما از اون نصبه ها موجودن گفته من فکر نمی کنم که نصبه علا چیه در زبان عربی؟ بگیم وجود داشته باشه آه که من این عبارت ابن شام رو با همین ما از اون نصبه ها موجودن برای شما چیه؟ به من نمیدونم نصبش باشه صحبه من صحبه چیه؟ فصله تا حالا آیا حلو نصب دارد یا ندارد یا نه ابن که گفته و عرب و نصبن وقتی نصب بوده جلب و هم بوده همون که خودت گفتی نصبن و جلبن و رفهم حالا نصب شامل حلو نشه جلبش بگید جامل هست مشخصه مثل اون که میگفت و عکس بر و ماعکسه به سامل اولا تحنیسن تحنیسنش رو گفت دیگه تذگیرنش رو شما چگاه کردید اضافه کردی اینجا جردن رو رفتن چه اضافه شد تو همین اضافه ها سمت از عزیز میگه میگیم اگر منصوب بشند یا, یا مجرور بشن یا مجرور بشن چی میگه خب مجرور و مجرور رو میدونید اعرابش بگید چیه اعراب رفت یا اعراب جرم رو تشرویس میدید مثلا مجرور بشه بگید اسم لعیس هست لعیس هفیران مجرور بشن میگید مجرور به من مجرور به جرم للاه من قبل و من فبلن. منصوب چی؟ که ابن مالک گفته میگه سمه ها و یعنی نصب علا زربیت فی قبل و ما در بنابرای ظرفیت بر مخبول است، فی هست در قبل بگید و ما بعدش این کلمه هست مگر در کلمه هست که به معنی چی بود کافه در این کلمه اگر منصوب بشه حلال حالیته بنابرای چیه حالیته که من مثال زدم رعید و زیدن حسبن گفتم منصوب شده بنابرای حالیت میگه احتمال داره که اینها یعنی اون قبل و بعدی که شما گفتی آه اینها چیزای دیگه ای هم بشن ایران ظروف رو سه دسته تقسیم میکنن دوش کنیم ظروف رو به سه دسته چیه؟ تقسیم میکنن یه اتشون رو میگم ظرف متصرف یعنی غیر از این که میتونه مفهول بشه چیز دیگری هم ممکنه مثل کلیبه یوم میشه یوم بلی جمعاته یومن مدارفه ممتداخل گاه ببطر میشه سندو یومد جماعیت میشه زرف اینو مهان چی چی؟ یه زرفی هم داریم خیلی مجسلفه یعنی اصلا درش تصرفی نیز بسا یسا هر کجا بیان زرفه مثل کلمه قطو کلمه آوزو اینا زرف چیه هم؟ خیلی یک ظرفی هم داریم میوه متصنع یعنی ممکن از ظرفیت خارج بشن اما کم مثلا مثل کلمه اند از ظرفیت خارج میشه مجبور میشه به من حرف جمع من میگه حالت با این توضیحی که من گفتم نگاه کنید و ذکر المصنف و ذکر المصنف ان اسماء الجهاد اینکه اسماء جهاد این جهادشیش جهاد کنه ما ادافو غیر از چی فوق. فوق بقیهش و تحت, و تحت جناب. فوق و تحت نه غیر از این دوتا تتسر رفت و تسر رفتند متوسط ها غیر از اینها ها بقیهشون تصرف چی متوسط دارن یعنی حواست باشه ممکنه زی زمانی از ظرفیت چی باشن خارج باشن خیلی هم نادر نیست خارج شدنشون و چیز دیگری منصوب دیگری شدنشون هم متوسطی یعنی احتمال داره که ظرف نباشه و انم دونه تتسربت و تتسربت نادره و این که دون کلمه چیه تصرف پیدا میکنه از ظرفیه خارج میشه اما از خارج شدنش بسیار بسیار چیه نادره یعنی احتمال اول درش چیه ظرفیه پس اصمای جواب سه دسته میشن یه دستشون غیر متسلطن مثل چی فروق و یعنی هر کجا بیان زرم یه دستشون متبسته دن در تصرف اون غیر از این دوتا و غیر از دونه دباید و دون خودش چی؟ تصرفش بسیار نادره انه از معالجهات ما ادافق و تر تتصرف و تصرفن متوسط ها مثل امام مثلا. مثل هست مثل ورا و انه دونه و این که کلمه دون تتصرف و نادر نادره نقطه سرفت وحث قایات در اینجا تمام شد همه آدون حالا از اینجا به بعد یک مبحث جدید شروع میکنه یعنی تیتر مطالب رو داشتن ذهن رو مببت میکنه با باب میکنه که بتونید از اینجا به بعد میگه آیا میشود که مضاف حذف شود و مضافانه نه جای او بنشیند میشه یا نه؟ میگه بله میشه میگه اگر نشست چه اتفاق میاخته؟ میگه نیابت میکنه از مضافه در شخصیتی که مزاف داشته یعنی مزاف مثلا تصمیه بوده مزاف و از اون نیابت میکنه در تصمیه مزکر بوده از اون نیابت میکنه در تسکیم مهمنس بوده از اون نیابت میکنه در تنیس و یلل مزاف وفا به آتفه وما یلل مزاف یعتی خلافن ان وفر اراغه ما وزفار و ما با باعثه ما می‌تونیم یالی عالمضافه یالیه زمیر فایلش عالمضافه‌چی ماست یالی یعنی چی؟ یعنی یکا او بعد یعنی ما یکا او بعد عالمضاف ما یکا او بعد عالمضاف چیزیه مضاف نیست زمیر فایلیه یالی آید سر به موسول هم و ما یالی عالمضاف یکی و زمین فایلش که به محتدام و رابط جمله خبر است به محتدام یهتی خلفن خبر حال است از برای فایل یهتی می آید یعنی مضافون علی می آید جانشین در حالی که جانشین است انهو انو متعلق است به خلفن جانشین است از به رو مضافون وقتی جانشین است یعنی چه؟ یعنی مضاف از یعنی خلفن انها خب خلیفه می شود از مزاف در چه چیز؟ فی متعلق است به خلفن خلافت می کند از موزاق به اعراق در اعراق م? یعنی وقتی میگه جا عرب برک وسعه قریته از به چی بوده؟ وسعه احلال قریته احل افتاده قریه مجرور منصوب شده جایه مزاخ شده شد به واسطه اولویت در اعلام شد متعلق است به چی به خلفن به سبب با حذفوا ازال شرطیه ما های زایده بالا داشتیم حذف فته ضمیر مزاخ نایب فاعلش جمله مزافنه لگه جمله مزفن فیل شرطه جواب شرط به غرینه دلیل و جزا چی شده؟ هست شده یعنی ازا مزافن مزاف ما یلیل مزاف یاتی خلافن انما فیل احرام اگر مضاف هست بشه اونی که بعد از مزافه یعنی مزافنه در می در حالی که خلیفه است از این مضاف در احرام حالا نه الان به اعراب چند تا قیل هم میزنه فیل اعرابه و تذکیره و تحنیسه آه همون و عربون اصفن که جرلن و لفهنه بایش چیه؟ ما ازاما کسه؟ مایتی جمعه اسمیه و ما یلیل مزافه و ما یلیل مزافه ای المزافه لن المزافه لن تفسیر ماست رضا خوندم المزاف و اله یعنی مزاف و یعتی یعنی خلفن انها می آید خلف از مزاف یعنی انر مزاف در چه چیز؟ اعرابه. در اعرابه یعنی مزاف و اله اعرابه چی رو میگیره مزاف و تذیکیه این یعنی چی؟ یعنی مزاف و اله است. احکام چی رو میگیره؟ مزکر میگیره جای مضاف مزکر میشه و تنیز یعنی چی؟ یعنی مزافه لعیه مزکر احکام مهندنس رو میگیره چون مزافش چی بوده؟ مهندنس و نحوه همه و مانند این دوتا مانند این دوتا مثل چی؟ و نحوه ها و غیر ها غیر این تا مثل اینکه مزافه لعیه جای مزاف میشه در افراد و تصمیه و جمع حالا مثالی که بزنه مشخص میشه. در افراد، تصمیه، جمع زیعقل بودن نکره بودن آه یعنی مزاف میشینه محلنه چیزه معرفه است مزافش چی بوده؟ نکره بوده جای مزاف میشه و معرفه همه که چی رو بگم میکنه؟ نکره افراد، تثنیه، جمع زیعقل بودن نکره بودن مثال هاش رو خواهد و غیره این ستا و غیره ازان باهو سفر زمانی که مزاق هست بشه نه به مثال و جا عرب بک خب آمدن در حالی چیه؟ صحیح؟ نیز آمدن با قدمه مثلا جا عرب بک کنی چی؟ دلارت عمل به ما میگه که بوده؟ جا امر لفظی یا بعضو گفتن جاهع عزا اورفک یا میگن بوده جاهع رسو رفک فرستاده تغییرات متعدد که همش به خاطر که آمدن در رد مستحیل است جاهع رفق ای امر لفظی اینجا چی نیابت کرده مضاف بعد از مضاف در اعراب یکی رفتی در اعراب چی را. و تجعلون رزقه کن. میگه اصلش بوده بداله شکر رزقه کن افتاده چی جاش نشسته؟ شکر شکر افتاده چی جاش نشسته؟ رزق شده چی؟ تجعلون رزقه کن. الان مزافت داده از مزافت نیابت کرده اونم با واسطه دان نیابت در ایران چی کرده؟ مسئله حد آیه اینه، عقد حاصل حدیث چون بعد ببینیم اخو به چه قرینه ای ما اینو تعریف میکنه. اون گفتیم عقل ما میگه چی؟ آ که جاء برای غرض مستحیل. اگه مثال بگم بود واسئله غریته، باز چی بود؟ عقل میگه که غریته رو نمیشه ازش پرسید. آ مسئله غریته. بعد گفت پس الاهل غریته در ناس. اون اندل قانونتای دیگه واسطه وسطشون نبود اما این بدل شکر رزق کن با یه واسطش شونسته میابد کنید افت به حدیث انتون مدهنون افت به حاضر حدیث انتون مدهنونه به, مدهنون به حاضر حدیث متعلق به مدهنون انتون مقتده مدهنون خبرده همزه بعد همزه استفقان و شده مقدم شد چون صدارت تا آمه داره امکار توبیخی هم هستید توبیخشون بکنه میگه شما نسبت به این قرآن ما آدم هایی هستید که تحصول و غیرت نشون بمیدید شد گرفتید اول آذر حدیث انتون مدهنون بیارزش میدونید و تجعلون رفت فکرون و قرار میدهید رزق خودتون رو اندکون تو کذبون رزق و کن مخبولک اولا تجعلونه اندکون تو کذبون یعنی تکذیب و کن مخبول معنا اگر بکنید چی میشه و قرار میدهید رزق خودتون رو بگید تکذیبتون نسبت به این برها معنی نمیدهید یعنی و قرار میدادید رزق خودتان نابگید انبون ان که از زبون که شما دارید قرآن رو تکزیف میکنید قرار میدادید رزق خودتون این تکزیف معنا نداره، معنیش چیه؟ یعنی و قجعرونم دردر شکر رزق کن و قرار میدادید به جای شکر کردن این روزی که ما بهتون دادیم این رزق مادی و معنوی که بهتون دادیم بدل از این چی؟ شکری که بکنید از این روزی مادی و معنوی قرار میدید چی بدلش؟ تکسیم و به جایی که شکر این نعمت رو بکنید تکسیم رفتان اونها تکسیم قرار نداردن بلکه بدل شکر از این رزق چی قرار داردن؟ قرار داردن تکسیم رو یعنی به جای شکر از این رفت تکسی با رفت نسان باید تقدیر گره و با تقدیر محنا چی میشه؟, میشه؟ و تجعلن رزق یعنی بدل شکر رزق کن ان نکن چی؟ تو کسی اون در اعرار چی بود؟ لطنی بود این در اعرار چی بود؟ نسبی اعرار جردی هم که تحصیل حاصله دیگه نه؟ یعنی خود مزاخنه نه چیه مجرور هست که بخواد نیابت کنه از جر آن نیابت کنه در اعراب جری همچین چیزی نیست این مثال مال اعراب مثال های اعراب مثال بعدی رو ببینید یسقون من بردال بریس علیه من بردال یوسف بقب رهیق سلسلی چه قلط زیاد داره یسقونه سقا یسقی دو مفغولیه یه ادهی رو داره مدح میکنه میگه یسقونه اون من مفغول اولشه وافایدش یعنی سیراب میکنن میروشاننده کسی را که ولد البریسه علیه مو یعنی نزد البریسه علیه مو یعنی نازل فرو فروجایل در بریز در اینها کسی که در این وادی و اینها فروجایل ورده فرد زمیر فاعلش علی بریزه مفقودش علیه متعلق به وارد که منو نازل است با علامت بازه را قائلا ورده به منو وارد کردن بریس اسم دیاه یعنی کسی که گیاه بریس بر این ها وارد کنه حالا کسی که وارد شود در این وادی بر این ها یا نه کسی که رجید یا مثلا ورده به معنی سکنه باشه منسکا ل بریس علیه هم. که نظره گفتیم که با علامت تشخیصو تضمین کرده یعنی کسی که در این وادی بر این ها بیاد یا این گیاه رو بر این ها وارد بکنه به منفان مثلا فرض رو من برد البریس علیه یسپون من برد البریس چی؟ بردار مفرس وان می میروشانند کسی را که وارد شود بر اینها چی میروشانند؟ بردار اسم چشمه در دمش اون چشمه را میروشانند یا آب اون چشمه را آب اون چشمه را یا احلم که جنی ماه بردار آب بردار را بمون. مین آب اب در انداز بعد میگه یوسف فق و این یوسف فق جمله بعد از معرفه میشه چی؟ خاص یوسف فق در رحیق سلسلی پاش به معنای معص یعنی مصاحباً به رحیق رحیق یعنی الخمر سلسال یعنی على العصر گویا یوسف فق تصفیق اینجای انسان مثلا یه چیزی باشه یک مثل مسلما سلام فرض ما شربتی شیری چیزی از این کاسه به اون کاسه بریز از, از اون کاسه به این کاسه از اون کاسه به این کاسه تا این که اون ناخالصیش چیه گرفته بشه یعنی حسابی پاکو پاکین چی میگن نشورن تمیزش میکنن از این پیاله به پیاله اینا تصفیه میگه نیر مشارت به اونها آب چشمه بردا رو در حالی که مصفق است یعنی از این پیاله به اون پیاله شده دیگه حسابی همه ناخالصیهاش گرفته شده یوسف و گویا که این آب هم مصفق است و همراه هست با خمد دوباره. این آبیه که با خمد مانده شده درجه یک شده یوسف و فرد زمیر که به براده ها میخوره برده این حال از برای فارق یوسف و حالا نگاه کنی شاهد سر چیه شاهد سر اینه که برادا جای مارش هسته ازش کس به چی کرده تذکیر کرده دردن خود خودو بردانو انسه ولی یوسف بغو که از اون اومده چی اومده؟ مزکر اومده یوسف بغو گفتی تو سف بغو بگی؟ نه پس اینجا بیاوت در تذکیر کرده یوسف بغو بردهیق زن سلیم من برد البریس علیهمون بس برده به وارد کنم البریس این گیاه رو علیهم بر این این سره منه و زمیر فایدیش هم داردوا معوله سانیه میگه یعنی چی ای ما اگردا ماعن ما عضو ما اگردا و هو ده فلان سره بردا و حالم که این بردا و این بردا نهرم بدهمش نهر نیست در بدهمش بدهمش این قوام مذکر ماندی چرا چون که نه بردا چیه مؤنثه مطابقته با خبرش کرده نه مطابقت با مرجعه چون دوزید دادن مثل لمباره اشت شمس بازغتن قال آزاد رفتیم آزاد رفتیم مطابقت با رفت کرده خبر نه با مشاره که شمس زمین روز مشاره یکی قبط قبط نهرون به دمشن ملت بنا ی نسبت تو خوالط اسم خانومی. آنها داره دل و مثل دانش مس دلیه. و مسکومین عرضاها نافهاتم نافهه یعنی نفه یعنی می بازی وزن. وزنده بازند. که می دونی میگه میشک. میگم مرد بیا مرد چی؟ فیل بنا به در بنام متعلق به مجرد. به نسبت حال از از برای خوله. خوله فایل مجرد یعنی مجرد خوله بنا. مَربَعه باش با ارصاق مجازیه دیگه یعنی از کنار ما گذشت خانم خوله. در حالی که بگید به نسبت یعنی داخلتن فیل نسمت در حالی که در اده از زنها بود یعنی لای اده از زنهای چندتایی بکشم قوله از کنار ما پذاشته این واقع و با است و حالم که المسکو من قردانه ها نافحتون واقع و با حالیه المسکو مبتدار نافحتون چیه؟ برای میسک مزکره نافعتون چی امده؟ معنیش. آزم المسگو نافعتون من اردانها اردان جمن ردنه بابا به حالین المسگو مبتدا نافعتون چیه؟ برای میسک مزکره نافعتون چی امده؟ معنیش. آزم المسگو نافعتون من اردانها اردان جمع ردنه رودن اینجا رو میگن این ته آستین که میچست به روکیدن این میگن هر. این اولش میشه پل. آستین این تحرش حالا نمیگن این میگن رودن که نه تکو یعنی دیگه نهایت مغالقه رو در شخص کردن میگه ولمسکو نافهتون من اردانه از رودن پیراهن او ها؟ مشک بوی مشک بودم المسک مبتدا مبتده نافهتون خبرش مردانه مر ها متعلق به نافهتون حالا مشک از اونجا میوزید یا بوی مشک میوزید عقل میگه بوی مشک دیگه رضا بوده رائه حتول مسکه رائه حتول مسکه بوده رائه یعنی بود افتاده مسک جاش نشسته مسک مزکر از رائه کسب چی کرده کسب نه مسک کرده این والمسکو جملش خاله است از برای خانده ای یعنی ای این راه حتوه یعنی راه حتوی مسکه این نهازاییه اینم حدیثه این نهازاییه حرامون علاو زکور آمده دو چیز هست که بر مردان آمده به آن برانجام حرام است یکی تلای و دیگری حرق میگه این نه هزین حالا این دوتا حرام است چیشون حرامه حالی دو فروششون حرامه داشتنش حرام ها استفاده کردن از اینها استفاده ی زینتی چیه حرام و ذکر رو. حدیث میگه این نه هزین اشاره داره به همین دوتا حرامان حرام, حرام. به معنای محرمه مستر به من اسم مفهول مثل هازا خلق الله یعنی هازا مخلوق الله جعل الله الكبت البیتل حرامه یعنی البیتل محرمه بیتی که درش خیلی چیزها چی میشه نهرین میشه حرامون یعنی محرمان. الان حازه شده اسم اندن ولی خبرش چی اومده بگید حرامون اومده و حرامم حرامان بگید نه نه یعنی حاذین باید از یک مضاف مفرد کسب گرد باشه مفرد گرد باشه حاذین تسنیه از یک مزاف مفرد کسبه افراگ کرده باشه چون خبرش اومده حرامون علا زکور اومده زکور متعلق به حرامون یعنی چی یعنی استعمال و ما باست. ای استعماله هما استعمال این دوتا حرام است بر امت من استعمال این دوتا حرام است بر امت من ولی خودش که حرام بگید به کار گرفتن اینها به عنوان زیند، حرام از ای استعماله ما عقل به ما میگه که اینجا بوده ان نه استعماله هازه اینه حرامون علا زکوره امتی. استعمال مفرد بوده هازه نظرش ازش کرده کسب چی چی کرده کسب افرا. به این مثال بعدی و تل کل قرار. و تل کل قرآ احلکناه تل کل مبتدار القرآ جمعه قریه اسم محرف بعد افلام بعد است اسم اشاره سه تا ترکیب داره بعد علاقه بیان نه. و اینجا چون جامده بعد علاقه و بیانش بین ال القرآ یکی از اون ستایران احلک نه هم فعل و فایل و مفعون جمعه بگید خبرش چی رابطه شه؟ هم بر بگرده به کی؟ به تلکه تهلیکه زمیرش چیه؟ هم نمیتونه باشه تهلیکه برای غیر زبر اغوله الگورا. هم برای چیه؟ آقله تهلیکه بگی؟ مفرده هم چیه؟ جمعه باید بگیم تهلیکه چی کرده؟ تلکر. کسب کرده از مضاف مقدرش تلکر. چی رو؟ یکی عقل رو کسب کرده چون هم اومده و یکی جمعیت رو کسب کرده چون چی اومده؟ هم اومده و یکی تذکیر رو چرا جون ضمیره مزکر؟ اصلش بوده اهل و تیکلغر دیگه نه؟ اهل و تکلغر ها البته میشه اینجا تکغر ها رو قرار داد برای یلکنا مقدم باب اشتباال ولی معفهوب خوندن میدونید که مثل زدان زبط تو گول به. تکلغر ها اهلک ای اهل ا دوها بهتر است از اهل ها از باب اشتقاق خوب از چی نیامده کرده بود در چیل؟ یک در جمعیت گتی چون اهل جمع دو در تذکیر چرا چون اهل مذکر سه در عقل چون اهل عاقله ولی که القرا چیه غیر آقله. در اعراب هست دیگه ببینید وقتی که ما میگیم اینها نیابت میکنند در نمیدارم تذکیر و تحنیس و عقل و اینها در اعراب چیه؟ صد درصد دیگه ها یعنی خیلی از اعراب اعراب که همشون چیه؟ یعنی باید ترکم شد مضافانه و مجرور الان نیابت کرده از مضافه مرفوح و شده چی؟ مرفوح اعراب در همه این ها هست غیر از اعراب در این چیزها هم میابد کرده هی احنا تفرقو تفرقو عیادی سبا عیادی سبا که عیادی سبا خونده نمیشه. مرکب مزجی اگر جزء اولش دارای چی باشه یا باشه ساکن میخونه با که مرکب سقیله یا هم داره لذا دیگه افلیش و مفلی بر فرد نمی کنه بر سکون بفونه مثل چی مهدی کرد قادی غلا حالا ایادی سبا سبا که اسم جایست با ملکه سبا داشته ایادی یعنی اون اطرافیان این شخص یعنی انصار و اروان آنجا. این متلاشی شدن دولتشون از هم پاشید خب. حالا یه عده شما از من سوال میکنید که فلان تایفه که در ایران بود چی شد؟ میگم تفررب و عیادی از سبب یعنی عیادی که میخوام میخوام میگم مذر شده بلا مبنی عیادی سبب الان اینه چجور ترکیب میکنید؟ باید اینطور طور بگید دیگه تفررب یعنی این تایفه تو ایران متلاشی شدن مانند متلاشی شدن حیاتی سوا مثل اونها مثل قومه به قول محروض تاتار که از هم باشی مثل مغول که از هم باشی مثل دولت شاهره دنه که از هم باشید اینها هم باشیده شدن مثلن یعنی یه مثل اینجا چیه؟ در تقدیره اون مثل میدونید که اضافه بشه به عرف معارف هم کس به تعریف نمیکنه اون مثل حال بوده از برای باب تفرقه الان وقتی مثل افتاده چی شده حال بگید عیادی سبا یعنی در عیادی سبا غیر از اینکه که اعراب مثل گرفته و محلن منصوبه کسب به چی چی؟ تنکیرم کرده که تونسته بشه چی؟ حال. یعنی تفرقه و تفرقه شدیده خود محلق شدن تفرق شدید همانند در حالی که مثل تفرق عیادی سبا بوده. تفرق عیادی سبا ای مثل دها مثل عوان انصار سبا الان عیادی سبا محل منصوب حال است از برابا به به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مثل قبلش بوده و اون مثل نکره بوده اینم از اون کس چی کرده؟ نکره کرده بیاید سر مطلب بعدی می یک شیر بخواد و ربه ما جرد ربه رو. چیه؟ حرف جنده ما که برسرش تر میاد، عملشو می آد ما دمشون بیان مایه کافه جله عملشون میگیره و دیگه عمل نمیکنه وقتی عمل نمیکنه دیگه لزومی نداره بر سر اسم در بیاد هم بر سر جمعه اسمی در بیاد. هم روبه ما جر دلالت و تقلیل هم میکنه دیگه و روبه ما جر رو. جر و رو فاعل با آتفه روبه ما رو که گفتیم ملغی و ملغاست جر و فاعل الگزیم مفغولش عبقه و فیل و فایل قاعده سرش شده یعنی عبقه و بو. تو این جایی که ما گفتیم تو این بیت قبلی گفتیم چی؟ گفتیم اونی که مضافونه لعیه جای مضاف میشینه اعرابش رو به گیر میگیره این کانونه اولیست کسی قالبا 96 درصد دو سه درصد احتمال دارد که مضاف هست بشه مزاقون لک بگیر یعنی کمتر مثلا 10 درصد 15 درصد احتمال دارد که مزاقون لک مزاق هست بشه مزاقون بمانه اما اعراب مضاف رو بگیرید نگیره و همون جد خودش باقی بمانه که باز این دو دست است مزاقون لک به جد خودش باقی بمونه دو دست هست غالب غیر غالب که تو مطمی نسید روبه ما جد فعل فاعل علزیم مفعولش ابقو فعل فاعل مفعول که زمیر منصوب بود و عامل زله پس شد کما قد کان قبل حذف ما تقدم باغي میگزارنش به همون شکلی که قبل از حذف ما شه قبل از حذف چیه مضاف شه یعنی چه بسا جربه دهند به مضاف الی مضاف الی به جرب واقعی بگذارن به همون جلی که قبل از حسب مضاف چیه داشته به همون جلش باقی بماند مثلا نا